بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلين والی وصحبه اجمعین اما بعد ما در درس گذشته بحث براهین و ادله وجود خدا را داشتیم اون ادله که خداوند گذاشته تا این که ما بهش پی ببریم از بحث شهادت و گواه خودش از بحث شهادت و گواه پیامبران شهادت و گواه فرشتگان خداوندی که خداوند در این آیه خلاصش می‌گه شهادت الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائمه بالعدل که در این آیه به طور خلاصه خداوند شهادت خودش رو و یگانگی خودش نقش می‌کنه و همچنین شهادت فرشتگان و شهادت علما و بحث شهادت رو خلاص شد بحث حس انسان بود که انسان می‌بینه خداوند دعوتش رو دعاش قبول می‌کنه بحث مواجذات پیامبران بود که انسان میبینه هنوز نشانه هاش مثل بحث نصد شدن ماهی که هنوز آثار اون اشاره رسول الله آثار اون نصد شدن هم هست باقی و بحث دلالت خلق خداوند رو کردیم نشانه هایی که هست از بحث خورشید و بحث ماه حساب کتاب دقیقش و همچین مخلوقات دیگری که خداوند در, در قرآن ذکرش کرده و این منشه یعنی لیوسبح و بحمد ربه تصویر موجودات و مخلوقات از جمادات و از نمیدونم زند اون چیزهایی از موجوداتی که زنده اند از موجودات زنده که ذکر خدا رو دارند حالا از اطاعت خدا بند و پروردگار یا مواحث فراتر از این بحث آبو کردیم اون شنیدنش و اون دیدنش که علما متعجب باقی موندند که چطور میشنمه چطور باقی میمونه توطور میشه که وقتی عکس یک کعبه را به یک لیوان کنی بعد از مدتی میبینی که شکل اون کعبه و شکل اون انسان هایی که طواف میکنن با خودش میگیره بعد ذکر خدا بود و شنیدن اون آب که گفتیم دبیل خونه وقتی که آبی رو میذاری قرآنی گذاشته میشه اون آب خراب نمیکنه و اون میگه که در اونجا گذاشته میشه فاسد نمیکنه لیکن همون میگه اگر در, در اتاقی گذاشته بشه با یک و یا بلفرد با یک صداهای نهنجار اون آب خراب میکنه اون میوه خراب میکنه تجارب رو کنید خود این مسائلی که ما در درس گذاشته ذکرش کردیم میمونه مسائلی هست که حالا یا عقل بشر میاد مشخص میکنه یا یعنی میاد یک نتیجهی میرسه در وجود خدابند و یا اینکه خدابند سراحتا در, در قرآن میخواد عقل ما را بیدار بکنه و سراحتا میاد در قرآن مثال میزنه برای این که ما عقل خودمون رو به کار ببریم ما فرقمون با موجودات دیگر اینه که ما عقل داریم ما فهم داریم، ما میتونیم درک بکنیم یه چیزی که هست از بدهیاته هر چیزی نیاز به سازندهی داره حالا چه موبایله، چه پیراهنه، چه دفتر نیاز به یک سازندهی داره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 طبیعته و یا این که خودت خالق خودتی احتمال اول اگر خودت خالق خودتی یا ببخشید اگر احتمال اول اگر که از هیچی ساخته شدی هیچ همی سوری طبیعتاً گبورید و بدید خب این نظام و این تنظیم و این چرخش و دوران حساس میخوره بیرون میاد در گاهی که وارش کلیه هست مده هست، قلب هست. چرا قلب عمل و مده نمیده؟ این تنظیماتی که در جسم انسان در جسم بولچه چطور میشه که طبیعت خودش همینطوره این چیز دقیق را خلقه بگونه میلیون ها سل، سلول در روز میمیرند دوباره چیز دیگری جاش میاد میلیاردها ها سلول در فقط در چشم تنهاست خب چطوره که این چشم میاد نور رو تشخیص میده میاد فلان رو تشخیص میده این همه از چیزها و عمور دقیقه کرشید ما گفتیم اگر یک ثانیه از بدالش خارج بشه انقلابی در کهکشان کهکشان راه شیری ایجاد میکنه یک ثانیه یک ثانیه اگر کرشید بیسته انقلابی انفجارات عظیمی در کهکشان خودمون ایجاد میشه و خودشون هم اقرار میکند اینو عقلانی هایی که هستن الالا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 اگر یک توپ رو در آسمون بخوام بگیریم نگهش بداریم چقدر زحمت یک توپ را با مغناطیسی نمیدونم بخوایم مثلا توپ بسطر بین زمین و بین نمیدونم بین یک جسم دیگه این مثلا به فضا نگاهش بداریم خب خیلی زحمت برای ما باید خیلی خوش کار بکنیم اون توپ رو از مغناطیس بسازیم مغناطیس پایین و مغناطیس بالا و که بخوام یک توازن ایجاد بکنیم که چی که اون توپ بسط کار بیفته درسته یا بالفرد ایک بازونه که روش توش پر از هوا بکنیم که بره بالا مثلا با سری اکسید فرش بکنیم بخواد مثلا به بالفرد یا با هیدروژین که بخواد وسط مثلا بالفرد بین سخ و زمین مثلا به بیسه در قاسه ده بسید خیلی سخته کنترولش نگه, داشتن دانش دا نگه داشتنش خیلی سخته خب چطوره که این زمین با این همه عظمت خورشید با این همه عظمت ایستاده سره جش چرا نمی یکشه؟ هم فضاست دیگه روی ستون که نیست در این فضا چه داری ایستاده؟ همینطوری؟ هم خلقون می غیرشه؟ بیهوده؟ همینطوری؟ اما ملخالقون یا خرسی خودش خالطه اگر خودش خالطه کجاست خلقش؟ چی آفرید اصلا این خرسید؟ این مثال ها هست که خداوند میزنه بیخواد اینو بگه که شما همه به وجود اومدید, اومدید. شما به وجود آورنده نیستید وجود آورنده کسی دیگری هست کسی که میخواد چیزی رو به وجود بیاره باید اراده ما خب داشته باشه وقتی که ما به وجود اومدیم بگه از خودمون اراده داشتیم قصد از این به خودمون به وجود بیاریم مثلا برفرد من به وجود اومدم قصد داشتم؟ اراده داشتم؟ این اراده از کجا آمد کجاست؟ چرا بیشتر از خودم نمیتونم خلقت بکنم بحث ارازه میشه، بحث قدرت میشه آیا انسان مثلا خودش قبل از این که الان به وجود بیاد، قدرتی داشته؟ این مثال ها مثال هایی هست که خودمان در قرآن میزنه مثال هایی هست که عقد بشری باید بهش پاسخ بده چرا انسان خودش هم همینطوری به خودش اجازه میده که وجود خودمان را این کار بکنه؟ خوصا این مخلوق ضعیف این مخلوق نیازمنده حالا چه نیازمنده به مخلوقاتی دیگر چه نیاز؟ بل... خیر ممکنه که مخلوق بدون نیاز باشه در می کره کرای زمین اگر نیازمندی اگر احساس نیاز می کنی این آخر این نیازها تو رو به کجا می آیا بندگان میتونن تونن نیازت رو براورده بکنن؟ نمی تونن نیازت بکنن آخرش باید برسی به یک قدرت لاانتها قدرت بی نهایت اراده بی نهایت آخرش باید به با همون ب نتیجه ای کار همونه به خاطر همین مثال هایی که زده میشه حالا من این سه تا بند را میگم تا اینکه خوب مسئله رو درک بکنید ما برای استدلالمون برای که یک شخصی بالفرد وجود خدا را انکار میکنه یک شخص کمونیست کمونیست کسیست که و رفت وجود خدا رو کلن انکار میکنه من میگه که مخلوقات خودشون وجود رو بردن وجود الله را این کار می ما برای رسیدن به خدا با این شرح ستا مرحله تک می وجود از سه حالت خارجی وجود کل وجود از سه حالت خارجی یا اینکه خودشون خودشون خلق کردن یا اینکه که بدون بردگار اصلا خلقت شدن طبیعتا همینطور بودش بود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 حالا بحث آفرینش رو ما داریم بگیم به عنوان لغویش هرچن که آفرینش رو برنه خلقه انسان خلق نمی کنه انسان می سازه ساختنه چه واقع مو... ما می توانیم یه چیزی رو بسازیم آیا میشه بدون اراده این موبایل به وجود بیاد این مسجد به وجود بیاد بدون آفرینش آیا میتونیم می شود که این کراف بدون ساختن ایجاد بشه بدون برق و بدونی نمیدونم شیشه و بدونه نمیدونم فلان و فلان آیا میشه این خود به خود به کار بیفته؟ اگر خود به خود به کار بیفته چرا ما خانیم این همه زحمت میکشیم؟ این همه جون میکنیم این اختراب بکنه اون اختراب بکنه این قدرد درس بکنه و فلان بکنه ریاضی و فیزیک و این علوم برای چیه هستن؟ پس غیر ممکنه که مخلوقات خودشو را به وجود وجود بیاورند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 اولی خودش خالقه از سه حالت خالقه میگفتیم یا خودش خلق کرده یا سه خالقی نداره یا اینکه خالقش پروردگار یک بحث بازم بر اینکه پروردگار یک تاست بازم رویش بحث میکنیم لیکن حالا بحث دومه که بدون خالقی ایجا شده باشه که این بحثش هم همی کمی قبل, قبل داشتیم این مثالهایی که ما در خلق داریم که در قرآن زده شده است. بحث خورشید و بحث ما حساب, حساب و کتاب های دقیقشون نمیشه این نظام دقیق این آفرینش دقیق بدون خالق باشه میشه یا نمیشه؟ نمیشه این نظام آفرینش دقیق این چش با این دید،, دید این گوش با این شنوایی نمیشه بدون خالق باشه یعنی این بدهیات در بحث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 آفرینش انسان با این دقتش در رحم مادر را ذکر می در قرآن کی دیده؟ می این شعر باشه در قرآن این مراحل خلق انسان شعر این مثال ها خداوند همینطوری برده یا اینکه نه اینها ها اقراریست از خداوند که غیر از او کسی ننگی این کارها رو انجام بده. قبل از اینکه علم بشری به اون حدی برسه که بتونه تشخیص بده که این مراحل حقه. بخاطر همین فلسفیش خان مسلم ما شده بعد اینکه کشف کردن این مراحل. مراحل خلق انسان. اول گوشت گوشت آویزون میشه بعد از آویزون فلان میشه در پشت نمیدونم 3 تا یا 4 تا پرده قرار داره، شکم و نمیدونم فلان و فلان و فلان همه این چیزها در قرآن بیان شده. در چه مراحلی تنین عبور برمی کنم؟ خب این وقتی که ما این دقتی داریم در قرآن در وحق چطور میتونه که بدون آفریدگار باشه. پس کیه این شخصی که به ما خبر داده با, با این همه دقت با این همه نمیدونم ریزه کاری ها اونم 1400 سال پیش بدونه که مثلا دزگاهی باشه. بدونی که مثلا به فرض ما بیام یک تشخیصی داشته باشیم یک نمیدونم پزشکانی داشته باشیم که به بیان یک شخصی همسرش رو فدا بکنه بیاد زیر دست پزشکان بره پاره بکنیم که نمیدونم یک ماهگی اینطوری دو ماهگی به این, این صورته آیا کسی وجوده اینجوری کاری میکنه هیچ کس نمیگه هیچ کس نمیگه همسرش رو فدا بدهش فدا بکنه حالا ببینید در ماه اول چطوره دردگاهی بوده در 1400 ساله پیش نبوده پس هم آخرش به همین میرسیم که غیر ممکنه که بدون خالق باشی آخر کار راه چارمون چیه؟ باید فروردگار باشی باید خالق باشی آفریدگار باشی خواه این آفریدگار مون چند تا احتمال هست این آفریدگار این آفریدگار ما بازم من احتمال میدم پس حالا رسیده به با آفریدگار باید باشه خودمون که آفریدگار بسید درسته؟ بدون آفریدگار هم نمیدونی باشید حالا باید آفریدگار باشه این آفریدگار بودن سه حالت داره یا اینکه دو تا با همند هر دو تا خلق خودشون دارن یا اینکه دو تا بودن سه تا بودن یکی دیگری ها را شکست داده احتمال اذهب خودش تنها بوده کسی نبوده که باهاش بیاد مورد بکنه الان به پروردگار رشگیمون درسته یا کسی باهاش هست یا کسی باهاش نیست و کسی هم نبوده که با باشه این بدهیات عقلی است این بدهیات عقلی است نیاز به دلیل از قرآن نداریم لیکن با این وجود به خاطر بخاطر ای این اقل پلم شده یه ما به کار بیفته از این تاریکی از این سیاهی بیرون بیاد بیدونه که یک تا و خالق یک تا یک یه. کسی شریک خدا نیست میخواد از این تاریک ما رو بیرون بیاره و به همون نتیجه آخر ما را براتونه و من خلق تلجن و انسان للی عبدون میخواد همین آخر خط همین سر خط همین سر همین خط ما را براتون که منم فقط باید اطاعت بشم منم که باید من را بپرستید نه اون نه فلانتون نه فلانو علانتون خدا من چنین مثال میدنه متخذ الله و من ولد ما اتخذ الله من ولده قل هو الله احد الله السم لم يلد ولم يولد فرزندی نداره چه کس نیازی به فرزند داره انسان مخلوق پروردگار فر اگر فرزندی داشت اينه سراغ اي کسانی که ادعای تبعيت از مسيح عيسى مسيح ميكنيد شماي كه ادعا داريد عيسى فرزند خداست چطور اجازه میدید و عقل خودتون که خداتون اولا انسان باشه انسان عاجزی که میاد اضرار و مصیبی کنه و میخواد چطور قبول میکنید که این خداتون بالای دار کشته بشه فوش به خدا اینکه بگید اینکه ما بگیم خدا فرزنداره پوشه با خدا. از پوش هم بکتره. بلفرد انسان یک شخصی را توی کچه خیابا میبینه بگی این فرزند توستوهنی ازدواج نکرده بهش برمیکنه نمیخوره. اینگه من دنا کردم اینگه من فلان کردم سا خود به به خودش میگه نمیگه. برمیکره بهتر یا نمیخوره. بگیم این فردن فردن به توست. بر میخوره نمیخوره. فرش هست یا فرش نیست؟ فرشه. یا ازدواج کردی و یا زنا کردی از این دو حالت خارج نیست. حالا ازدواج نکردید. زنی ندارید. میمونی یک احتمال. زنا کردی و این فرد فرزن به دنیا آمده از شما. این فرش یا ابتحام یا واقعیت از این دو حالت هم خارج نیست. الان ی تهمته به خدا رفته. ما اتخذ الله منه ولک. از دل اینکه غیر ممکنه که من فرزند داشته باشم. و ما کان معه من اله. پروردگاری هم همراهش نبود. همراهش نبود. میدونی چرا؟ من خودم از خودم فرزندی به دنیا نیاوردم. من خودم خدای دیگری خلقهت نکردم شما این نصارا که از دارید اگر بالفرد خداوند خدای دیگری رسافته دیگر ای که عیسا واشه ما باید کدوم یکی رو خدای کل بالفرد الله فرد رو کنید آخه بیلتی بیه خدا درسته انتهای هر کم بیه خدا الان این احتمال بزنیم کنات بریم به این قسمت و ما کهنا معهوم من اله کسی هم همراه خدا نبوده چرا؟ اگر کسی همراه من بود اذا لا ذهب كله الى اگر پروردگار چند تا بود اذا لا ذهب كله بما خلق پس هر پروردگاری میاد مستقل میشد با خلقش و لعلا بعضهم على بعض و خود به خود یکی بر دیگری برتری پیدا میکرد آلا نگاه کنید همون این تا احتمالاتی که ما گفتیم جواب و فاسف میده پروردگار ما هستیم که هست درسته؟ خب حالا همراه این پروردگار یک پروردگار دیگری هست بلفرد باشه یک پروردگار دیگری باشه خب اگر هست مخلوقاتش کجان؟ اگر هست چی آفریده؟ کدام پیامبر فرستاده خلقش کدا؟ ما یک پروردگار داریم که ادعا داره پرشید و من آفریدم آسمون و زمین و من آفریدم هو الذی خلقنا لكم فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسوّاهن سبع سماوات حمت اخبار می‌گرده به چی؟ به یک پروردگار. 124000 پیامبران میرسه به یک پروردگار. کجاست؟ نیست ما این فروردگار که این منت رو بر سر ما گذاشته و این فرآن رو به ما شناخته آیا از این فروردگار فروردگار رو دیگر رو بیدیم؟ که دعا بکنه؟ ندیدیم پس خود به خود با چه کار بکنیم؟ به همه یکی بیشن درسته؟ خود به خود با به همه یکی بیشن خب یا اینکه احتمال دوم دو تا یا ستا یا چار تا بودن یکی بر دیگری ها غلبه کرده یکی با دیگری ها غلبه هرچند که در احتمال اول که دو تا با هم داشته باشن غیر ممکنه چون خدا میگه اذن کل الاه بما قد و لا على بعضهم بعض. یکی با بر دیگری بر برتری پیدا کرد نظام به هم میخورد این من اینجوری میآورین من اینجوری این شرکت موبایل این میگه من اینطوری میسازم این میگه من اینطوری هر کدام با دیگری رقابت میکنه ابت پیش شما دیدی رقابت اگه هست کجاست؟ می اگر دو تا خالق بود رقابت پیش می اومد و اگر رقابت پیش می اومد یکی شکست می خود و یکی بر دیگری برتری پیدا می کرد پس احتمال دوم دو تا سطپ خدا بودن یکی بر همه غلبه کرده آخرش کی میشه آخرش خدایی پیدا می باید یکی باشه آخرش خدایی که شکست بخوره خدا نیست خدایی که از بین بره خدا نیست. آخرش به همون یکی که غیر از خدا کسی دیگر نبوده و نخواهد بود پروردگار یکیست یک شخصی با خودش میگه یعنی من خب تو ذهنم میاد من خودم مادرم به وجود ورده مادرم فلان پدر مادر بودن فلان بود خب آخر آخر اینی این, این چیزی که در ذهن بچه یک شخصی به خودش بگه چرا پس این مثال ها تو زهنم میاد یعنی شکیه مثلا چرا من در پروردگارم شک میکنم خدا من نگر این شک و تردید در ذهنت بذاشته خاطر اینی که احساس نیاز پروردگار بکنی اینه که تو بدونی هر مخلوق نیاز بشی زکره انسا داره مرد و زن داره بوجدابرنده میخواد الا الله واحده قلب والله احد ليكت همه مخلوقات از همه الکترون و پروتون و نوترون دور همه چرخان بار مثبت و بار منفی از جامد و از غیر جامد همه مخلوقات خدا مثبت و منفی دارن ندارن از درخت بگیر از از همه تخت بگیر و همه همه چیزها قطب منفی مثبت دارن ندارن ذکر و صوت دارن ندارن مرد و زن دارن نیازمندن لیکن فروردگار حالت و غیر از این فروردگار ما کسی ندیدیم که دعا بکنه که ما را آفریده آفریدگار حالت باید باشه و غیر از این آفریدگار آفر دیگری اینو نداشتیم باید همینو بپرستیم و غیر از دیگر مستحق عبودیتی است نه و نه محمد و نه غیر از محمد صلی اللہ علیه همه اینها مخلوقات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 قولو به در پیامبران خداوند لعن الله یهود و, نصار و نصارا اتخذوا قبور انبیاء لعن الله راست گفتونن که ما از نصارا عیسی ابن مریم لعنت بكنیا بر یهود و نصارا که برای خدا فرزندی قائل شدن اینها گفتن عزر فرزنده خداد اونا گفتن عیسی فرزنده خداست لعنتشون میکنه که این چینی پوشی را به خدابند میده شما راضی میشید این چینی پوشا داده بشه اگر میدونید که این پوشو به خداوند چرا باز جهاد نمیکنید چرا باز بیدار نمیشید چرا جلوی این پوشو نمیگیرید مصریان کی خوابن چرا از خداستون دفاع نمی کنید؟ چرا باهاشون نسبت برخاست میکنید؟ چرا مثل اونها لباس میپوشید؟ همین ها جای علامت دفاع غیرت مسلمانان کجاست؟ یا اینکه میگن نمیدونم علی علم میدونه یا میگن نمیدونم پیامبر فلان میدونه و میدونه خود رسول الله همین لا تزрунن که اتت النصاراء ایت ابن ماری اطراع نکنید القلوب نکنید در حق من همونطور که نصارا قلوب کردن در ایذا به خداییش خستوندن چرا به غیرت ما برنبی کنه وقتی که یک شخصی میاد جلویمون این چیلی فرشهایی را به خدامون میده علنا میاد در حق رسول الله غلوب میکنه و بندگی بندگیش انما انا الله رسولی که میگه من بنده خدام ما بیام این بندگی را به خدایی برسونیم بعد بیام نسبت بدیم احادیت به رسول الله صلی اللہ علیه وسلم اگر تو نبودی همه مخل همه مخلوقات را خلقت نمی کنم. هر هرچی خلقت کذن برای تو بوده که مناقزه آیات صریح قران ما خلق الجن والانس الا ليعبدون من جن و انس فقط برای خلقت خود برای عبادت خدا هم خلقت کردم نه برای محمد نه برای غیر محمد این همه پوشه به چه از ذوق به اثر رسول الله الله علیه و و چه است ادعای نمیدونم فلان امام الغیب داره فلان فلان نمیدونم فلان قل لو كنت اعلم الغيب لكثرت من الخير وما مسني سوء اجر علم الغيب بدون انسان خدا میشد دیگه اگر علم غیب داشتن به محمد رو غیب و داشتم ضرری به من نمی رسید لسترته من الخير کاری خوب انجام میدادم و ما و ما مسني سوء و ضرری هم به من نمی رسید چرا درد چرا مریض شد چرا درد دردش درد لرزش اینطوری نهادیت رو میگه لعنت میکنه بر نهجوت نصرا چرا در شدة شدت مرض خیراتش اولا برای دین خدا دو أهميات اهمیات توحید اهمیات خداوند ماشقدر خدا را شناخت این همه بدیهیات چقدر با این آیات به این ریزی چقدر دقت ما اتخذ الله من ولدا وما كان معه من اله اذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على باء على باء چقدر این آیه تفکر کردید ای, خ... ای خدا اگر قرار را که هیچ خدایی نباشه اگر قراره که تو فقط باشی چرا پس مردم از تو دورن پس چرا ما برای حقت این دفاع نمی‌کنیم و خونمون رو فدا نمی‌کنیم پس چرا ما نمی‌کوشیم کوشش نمی‌کنیم آیا راضی میشیم راضی نمیشیم اگر راضی نیستید پس چرا جهاندانی کشید چرا جنبه نمی‌کنی جن نمی برای خدا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 ikke farao ikke hva er deres herre og moisa sa moisa og harun sa hva er deres herre for virkelig gjør det moisa begynte å svare rabuna aladhi a'ta a'ta kull shay'in khalqahu thumma hada ربنا الذي اعطى كل شيء خلقو ثم هدا پروردگار ما کسی اس کی خلقت کر بعد ہدایتش کر در ایک مٹیر قرارش تھا تو چیکار کردی تو بھی چنادری و اگر مردی بلپس چنی نہ کہ انسان کہ ان میں مدد کرے اگر مردی ایک ساحل رو دیدی کسی کہ دادا رے اگر مردی بیا با گوشت بینی با چشم بینی اینچنانی حافظ گستا اگر مهدی هست اگر مر... مهدی آسمون زمین در دستشه پس بذار زمینم مال خودش باشه و همه مردم و رو من ندونم فلان رو بکشه اگر زمین در دست خودشه اگر اینچنی قدرت داره علم غیب داره پس بیاد مخالفینی خودش از زمین بذاره مرد بیاد اگر مرد بیاد آخرش هم که خدا و میخواد بگه هیچ کس نه علم می داره نه نمیتونم خلق رو داره نمیتونه چیزی رو بیافرینه هیچیز آخرش خداوند و پروردگاره یک تاست و ما نیازمنده خودش به تنهایی هستیم خب این خلاصه یه درست این روزمون درست آیندمون انشاءالله بحث فترت و نقشش در اعتراف به وجود خداوند فتفند و نقش آن در اعتراف به وجود خداوند و یا پی بردن به وجود خداوند خیلی ها انفار می از عقلانی ها این مسئله خلافی را چاید چندین جلسه هم باش باشید بیکنش الله سعی می که آنچنان که شایسته این بحث هست سعی بکنیم که عداش بکنیم در اینجا رایش بکنیم سبحانکم و بحمد سبحانه و بحمد سبحانه